سیستم بعدی که میخوام در رابطه با صحبت بکنم سیستم قلبی اروغی هست. تغییرات قلب اروغی در فاصله خیلی کوتاهی بعد از بروز بارداری اتفاق میافتن و خیلی سریع هم بعد از ضایمان به وضعیت طبیعی قبل از بارداری بر میگن. حجم خون مادر باردار به طور میانگین در روند بارداری 40% افزایش پیدا میکنه. و چون این افسایش بیشتر در پلاسما هست تا نسبت به سلول های خونی یک کم خونی فیزیولوژی که در میانه بارداری برای مادر باردار اتفاق میفته که یک امر کاملا طبیعی هستش و ممکن هستش علایم خفیفی مثل خستگی رو در مادر ایجاد بکن اتفاق دیگه ای که در سیستم قلبی اروغی مادر باردار میفته این هستش که به دنبال بالا رفتن دیافراغ ناشی از افسایش رحم قلب مادر یک مقداری به طرف چپ و بالا منحرف میشه. از طرف دیگه هم در پاسخ به افزایش حجم خون، قلب مادر باردار یک مقداری بزرگتر از زمان غیر بارداری میشه. برونده قلبی مقداری افزایش پیدا میکنه و تعداد زربان قلب مادر هم اندکی بیشتر میشه. تحت تاثیر هورمون پروژسترون عضلات صاف دیواره اروغ مادر شل و ریلکس میشن و همین امر باعث میشه که دمای بدن مادر باردار یه مقداری افزایش پیدا بکنه با تمام تغییراتی که در گردش خون مادر اتفاق میفته فشار خون مادر باردار به طور طبیعی تغییر فاحشی نمیکنه یه مقداری ممکنه تغییرات خفیف در فشار خون مادر در سه ماه دوم اتفاق بیفته که غالبا هم در مواردی هستش که مادر خیلی طولانی مدت میایسته یا به یکباره تغییر وضعیت میده به خاطر همین ما همیشه توصیه می‌کنیم که مامان‌های باردار اگر طولانی مدت می ایستند دائما پاهاشون رو عوض بکنن و اگر هم میخوان بلند شند از جاشون یه حوصله بیشتری رو به خرج بدن و خیلی آرام و آهسته از جا برخیزند. به مادرای باردار توصیه میکنیم که هرگز به پشت نخوابن به خصوص از نیمه دوم حاملگی به بعد چون که فشار رحم مادر باردار روی آورت شکمی و ورید اجوف فوقانی باعث اختلال در گردش خونه مادر میشه که اصطلاحا به هی سندروم افت فشار خون گفته میشه این سندروم همون طور که خدمتون گفتم بیشتر در نیمه دوم حاملگی و به ویژه در سماهه سوم اتفاق میفته و به راحتی با تغییر پوزیشن دادن مادر بهبود پیدا میکنه و قابل پیشگیری هستش توجه به سندرام افت فشار خون و پیشگیری از اون در هنگام انجام ورزش ها و تمرینات دوران بارداری بسیار بسیار مهم هستش یکی از شکایت های که ممکن هستش مادران باردار در این دوران داشته باشن واریس و ورم اندام های هستش و اون هم الاله مختلفی میتونه داشته باشه که علت اصلیش به دلیل فشاری هستش که رحم به اندامهای تحتانی مادر میاره عوامل دیگه هم درش دخیل هستن مثل افزایش وزن مادر در روند بار داری. البته خود بدن مادر هم در این زمینه بی تأثیر نیست ساختمان کلاژن های بدن مادر و خصوصیات جسمانی خود مادر هم ممکن هستش عاملی باشن برای بروز واریز و ادم در اندام های تهدانی ممکن هستش که در اواخر بارداری ورم در موچ پا و ساق پاها وجود داشته باشه و همچنین ممکن هستش که این ورم رو در مچ دست مادر هم داشته باشیم و با بشه که مادر در دستهاش احساس سفتی و خشکی و سوزش در انگشتا داشته باشه که ناشی از فشاری هست که به اعصاب مچ دست میاد که هم به سندرم تونل کارپ گفته میشه